بوی خوش تو هرکز باد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید ای شاه خوست چشم به حال گدا فکند کنگوش بس حکایت شاه و گدا شنید خوش میکنم به باده مشکین مشام جنب که از در فوش سوم عبوی ریا شنید سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرتم که باد فروش از کجا شنید یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه آشنید اینش سزا نبود دل حق گذار من که از قمگسار خود سخن ناسدار شنید محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد از گلشن زمان که بوی وفا شنید ساغی بیا که عشق ندا می کند بلند کن کس که گفت قصه ما همز ما شنید ما باده زیر خرقه نه امروز می خوریم صد بار پیره می این ماجره شنیم ما می به بانگ چنگ نه امروز می بس دور شد که گمبد چرخین صدا شنیم پند حکین محض ثباب است و عین خیر فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنیم حافظ. وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آن مباش که نشنید یا شنید